جا جزا میزنم این سوال و صحب بسم الله الرحمن الرحیم سوال, سوال. سوال کردن چرا بین افراد در علاقه و اونس به احساس وابستگی به اعتقاد رایات و تردلال با هم فرق هست بعضی با اینکه که هستن ولی احساس خاصی ندارن ولی بعضی میان حس عجیبی داری این دلیل بر خوبی یا بعضی کسی نیست که اگر مثلا توفیقش کمتر هست به ظاهر به اعتباط بره یا مشاهده مو و و مشرف بشه این دلیل بر خوبی نیست یا اگر مثلا نره دلیل بر بدی نیست منتها فرصتیه لازم نیست برای انسان تا حالش مثلا یه حال لذت پخشی بشه یا با یه لذتی مثلا نه به عنوان اینکه کار مستحب عکیدی است و باعث میشه به خدا و حضرات تقرب پیدا کنیم نزدیک بشیم قدم برداره اون حال و لذتش هم میاد. بعضی سوال کردن که جوانانی اهل روابط نامشروعی نیستن ولی گرفتاری بعضی از گناهان جنسی هستند اینها سوال میکنن از دیگران جواب چی بدن به این رفعی موصل؟ آنهایی که احتیاط پیدا نکردن با ورزش با تنها نبودن میتونن رفت کنن ولی اونایی که احتیاط پیدا کردن باید به پزشک مراجعه کنن یه اصلا روان مراجع کنن درست میشه در باری سال سوال کردن که های این گرآن می هست؟ قرآن امیر المانی علی السلام هست؟ قرآن عثمان هست؟ چه ارتباطی به این ها بوجود ده؟ خداست همه هست گرآن هم و از دولب مملک پیانبر بیان شده در قرآن در نزال به روح الامین علا قلبک به پیانبر فرمویش میکنه خدای متعال که اون روح القدس نه جبرایل امین روح الامین همون روح القدس هست روح القدس به قلب نازلینت نازل شد قرآن رو نازل کرد به تکون منال منزورین برای اینکه انذار بده به مردم به لسان عربی مبین به زبان عربی هم نازل کرد و شما فرمایش کردین برای دیگر اونها املا کردن یه عده‌ای نوشتن از جمله امیرالمومنین سلیمان علی املا کرد عثمانم یکی از املاکننده ها بود سنی‌ها یک کم می‌آورن یه چیزایی هم اضافه میکنن مثلا ماویه رو میگن از کاتبینه وح هست یا کیسر همش اضافه کرده ولی امیر سالمون علی جامعه جامع قرآن هست. همه قرآن رویشون از ذلول مبارک حضرت شنیدن پیامبر خاتم و نوشتند این قرآن ها هیچ فرقی با هم نداشت. همه چند نفری بیشتر نبودن که خونده نوشتن رو تسلط داشتن. اونم به خط همون زمان. یکیش امیر سالمون علیه بود و چند تای دیگه اینا همه همون قرآن رو نوشتن هیچ فرقی با هم نداره. قرآنی که امام سالمون علیه نویشتن کنارش شعن نوزول ها رو هم نویشتن. اینم چه خاصیتی رو داره ولی اونهای دیگه نه شأن هایی که در دو تا کتاب تنزیل قران و کتاب دیگه هست که شأن نزول نوشته اکثرش روایت ضعیف و بیمناسبت هست. اما قرآنی که حضرت نوشته همه شأن ها رو دقیق کنار آیات یادداشت کرده پس از لحاظ ترتیب آیات و سوراها ها هم بودن فرقی نداشتن؟ بله امام باقر امام صادق وقت داشتن که اگر چیزی خلاف هست بگن هیچی چی همین برآن رو میخاندن میشنیدم و ساکت بودن تقریر امام علیه السلام خودش دلیل بر صحت اون نزول هم دست ما نرسیده؟ روایات اهل بیت علیه السلام شعر نزول داره ولی شان نزول ها معمولا صندهاش ضعیفه مگر شان نزول هایی که با پیام اصلی آیه همخانی داره که تعدادش کمه، زیاد نیست بله در باری سر ارتباط لیلت القدر و حضرت صدیقی قبله ها سوال کردن بعض از روایت خوشاره داره لیلت القدر یک پرست برای ما که با توبه و انابه و دعا و اعلام نیاز به خدای متعال تقدیرمون رو تقدیر سال در پیشمون رو دعا کنیم که تقدیر خیر باشه این پرستمونست ولی لای رتل در از برای امام زمان سابون علیه هست که تنظر تو و روح ملائکه و روح القدس به قلب مبارک ایشون نازل میشن و تقدیرات رو همه رو به ایشون اطلاع میدن علم ماکان و ما یکون رو اول به قلب شریف ایشون نازل میکنه و تقدیرها همه معلوم میشه ماها ها اون موقع باید دعا کنیم که انشالله تقدیر خیر داشته باشیم بقیهش خیلی به ما مربوط نیست بعض این وقت ها به افراد مومن و مذهبی گفته میشه که شما نباید پارک ها و رسولان ها و مثلا سینما ها رو خالی رزارید که افراد غیر مذهبی میان و نمود خارجیش میشه که این و غیر مذهبی ها همش رزارید ما میریم اونجا میشه اونا میشیم میریم رو میبینیم اون او اونا او سود میکرد چند ما هم چه میکرد جوابشو مثلا داده باشید نکنه کم بیاری بگرد این حده مدن یا مثلا هی حرف خوبی نیست. البته کوه رفتن، ورزش کردن، خانوم پارک بانوان هست برن، آقایون همینطور مثلا ورزش کنن، اما اینکه هر اونا میرن، ما هم بریم که خالی نشه، حرف کاملی نیست، اونا خیلی جا ها قانون باید محدود کنه، به صحیح قانون بادار کنه درست بشه. سوال کردن یکی از مهارم که ما بافیگی ارتباط داریم با خصوص خیلی لحظه غیبتن هم. هم میدیم رعایت میکنن ما با غیبت میشینیم چون غیبت میکنه وقتی که میایم از شدت از, از وجدان دی سر درد میگی ما اذیت چیکار چه خودم با؟, با لذت گوش میده که وقت نه با زاجنش چه اون دوومیش کار نداره استماع درست نیست ولی به گوش خوردن مثلا حالا شاید والده گوش بده ایشون قیبت نمی کنه اما گاهی صحبتهای میکنه که خوبه نکنه من همطور کتابم هم دست میدارم مطارم میکنم این که بله میکنم این هم داره میگه آشان داره هم میزنه این کارشو داره میکنه بعد یه جوری کنار آمد ولی اگر کسایی هستن که از ارها و اهل اصرار بر گناه هستن این مقداری باید محدودتر برخورد کرد حضرت فرموند سلو ارحام کن ولو به سلام قهر نباشه مردم نگه این قهت رحیم کرده و قهر کافیه بعضی اصرار دارن که قنه امه خانوم بدشوه رو ببرن مثلا خانم آداشن بیاد ولو به خانوم یه شام میخواد به ما بده خدا شای پدرت صاحب بچه رو چلو چشم آدم میره میاد این بر میزنم یک ماه باید بیر خونه رفارو جو کنیم آه بیره امرا یک سری میزن یا میان بچه هم ها کسی همه سلام رسوندن یه مقدار رو لخره. گرفتاری از و اینها به بهانه ای که دروقم نباشه بعد رفارو جو کرد چاره ای نیست شما میزان باجیب از سلی عراهام تا چه مرتبه‌ای هستش و چه مقدار یعنی علوم عقبون باشه چه سلسله عقبون باشه و چه مقدار ست کل همه اونهایی که از یه مادر زاده شدن اینا ارهام هستن یعنی خواهر برادرها پس نا خواهر برادرها عمه خاله اینا که از محارم من و کسایی که با بسته‌ هستن به اینها همه ارهامن حالا ارهام درجه 1 داریم تا دور چه مقدار، داشت؟ چه زمان، حسن هر یک ماه، حسن لازمه؟ همین که عرفن نگره، این قهره گاهی بعضی یه رو تلفونیه زیادی صحبت می‌کنی یه هر و در میاد مثلا میگه، چطوری خوبی؟ حالی شکری مثلا میکنی که میزاره بخنده میگه، اینجوری گفت به من، زنی میزنه به یکی دیگه بعد سنجیده و کوتاه و قهر حرامه چون قرح نباشه ارتباطم نداشتم. همین باید یه ارتباطکی باشه که دیگران نگن این قطع ارتباط کرده قهران با هم آجان ای ارتباطه امروزی مثل پایا مجون هم میتونه این سلیه ارتباط. اگه توهین نباشه نداره آسان با خوهرشی پیامک بزه شبه این بابا جلو شوهرش خورد میشه در این اوضای اقتصادی امر جوانان به امر ازدواج چه باید بکنی؟ این همه مسئله اقتصادی از هم اگه سبا که ازدواج رو خداینایت میکنه زندگی رو میچرخونه سوال کردن که در مسیر بندگی شیطان ایجاد نانودی میکنه و سرعت آدم رو کند یا متوقف میکنه برای این وضعه چی کنیم؟ شیطان هر جا, جا پا پیدا کنه میاد جلو جا پاشو پراهم کنیم. به دست خودم جا پای جاپای شیطون رو ایجاد نکنیم. شیطون دستش بسته میشه. چون خدا میاد جلو. یه قدم که ما بیایم ده قدم خدا میاد. دیگه جا ورای اون پیدا نمیشه. یه قدم ما اینه که زمینه گناه رو به دست خودمون ایجاد نکنیم. با سوال کردم با تا چون با و الله خوشبهد به حضرت آقا های شما خاطری بازمون نشده اید دارین برای چیم باید کنید؟ یعنی ارتباط با هزتها ها هم؟ های شما خاطری باشه با هزتها هاشت اینجور سوال خب جد؟ یکی که خوشمزه است، یه بار من خدمت ایتول خوشوق بودم و تابستان بود و اینا با اینکه که کرده بودم اید کن راه از قوم اومدم تا تهران، خدمتشون ریسیدم همیتران فکر میکردم چیجوری به ایش بگیم که ایزار اطر به من بده من گفتش که اون کلید رو سیرمون کتاب بردار من کتاب رو بلند کردم که این کشو رو باز کنم نشسته بودم کشور میزشو باز کردم با اون عطر رو بردار ایزار بزن به خود یه جای عطر خیلی شیکی بود باز کردم دم اصلاق همسره و اصلاق خالص بود ما کاشی هستیم دیگه شناختم همه ابتدا دیگه اثر رو زادم و گفت ببهم بیزن سر جاش دیگه دستم و گذاشتم سر جاش گفتم خیلی هم خوشبوه هم مثلا جای از شکیل و زیباز و این رو از اطاقه ها هر چند وقتی بار یک دونه از تو رفت آمده هایی که داریم با هم مرابداتی داشتم بر این یک خاطر بود از ارتباطیشم سای کنه آی آمد می توانید دعا کنید خدا همون چیز هایی به طاقتش رو نداریم رو از دور کنیم بله در آیه شریفه هست مالا بله طاقت لنا الانو... بله, بله این یکی از دعا هاست خدای که من طاقت ندارم برای من ایجاد نکن سوال کردن که چه کارو از کسی که ناراحت هستیم این ناراحتی باعث غیبتش نشه، و اون ناراحتی از دل ما بله با یادش نکنیم؟ یکی از راه های سادهش این, این که ازش تعریف کنیم در پشت سر وقتی که مثلا نیستش برای دیگران بگیم پیلانی این سپات های خوبی داره این تعریف کردن دل رو نرم میکنه بله؟ نه سپاتی رو که داره بلاخره همه یه خوبی‌هایی دارن اون خوبی ها رو بگین انسان. اینکه دروغ تعریف کرد. ما هممون تقریبا شبیه همیم. هممون هم غیر معصوم هم دیگه خطاب و خدای نکرده. اشتباه کم نداریم. خیلی نباید خودمون رو نسبت به دیگران بری بدونیم بورو مثلا خدای نکرده. کم ببینیم. حضرت فرمود هر کس رو نگاه میکنی یا از تو کچکتره یا از تو بزرگتره حتی پنج دیگه زودتر شاید به دنیا اومده. پنگ دیگه دیرتر به دنیا اومد. اونی که بزرگتره از توه شاید یا الله بیشتر از تو گفته تحویلش بگی یا لاغر تحقیلش نکن اونی که سندش کمتره یه گناه کمتر کرده تحقیل نکنیم مردم رو حالا به دلیل بد نراحتی بود ناراحتی بین اون پیش اومده اینقدر دنیا کوچیکه اونایی که دور از جون همگی یه مریضی لا علاج میگیرن کوچیکی دنیا رو سری میفهمن گفتم میتون پریشه به ما دیدی گفتش که این آیشا محمدی خدا نصیب گل بیوو نکنه دست به من نشون شوندت گرفتم گفتم خوب چرم, گفتم رفتم پیش متخصص داخلی هم نشون دادم اونجا خیلی از <تصفح> ناجوره ما همونجا عرق کردن گفتم یعنی تموم کار مثلا سرطان چیزی گفتش که گفته اگر آب نخوری تجنج میکنید مثلا نمیشه دیگه کاری کرد گفتم یعنی روز نگیرم گفت نیمی دونم باش گفت به علاوه اینکه گفتیم دونم دو سه تا مورد تند گفت. من دیگه درار خود بود رو برسم خودم برود پاید زرف کردم روی صندلی نشستم که حالا هیچکی امنی همطور نیشستم اونجا دگاه کردم خب شاید مثلا الان من تنهایی دید حالی برام پیش بیاد و بیفتن کی به دادم میرسه؟ بعد گفتم حالا ها. کسی هم باشه دی تمام دیگه وقت آدم میاد تو نیست همه اون ناراحتی های افراد کینه خدا خدایی کرده یا نسبت به افراد مثلا نظرات سویی زشتی داره همه از دل پاک میشه بعدا دکتر متخصص تخصص بود زنگ زد زنگ زد گفت من چیز رو دیدم عکسشو فرستاد برام فردا برات دارومین میسن یه ماه خوب میشه این چیزی نیست مثلا قنده خوند میاد پایین نوند به هم و این یه خبر بودم یه خبر بود دیگه دوباره نشستیم و تصمیم گرشتن دیگه نون نخورم مثلا بیده دیگه نخورم خوب اقای درودیان زحمت کشید بود فکر می با غالی پولو بود با گوشن بود چیچی چیچی چبیه نشستیم با راحتی خوردیم و بردیم خوب دارو میاد درست بشه نباید کینه کرد نباید بدل گره اگه به همون کمک کنه ان شاء الله اینطور باشه. جلو چه اصلچه‌ای که ما بدی کردید، بدی‌ها رو در ذهنمون داریم و حلال نمی‌کنی. وقتی حلال نکردن افت به ما آسیب می‌زنه یا یا ببخشی به ما یا بمونه. روح ما منکرر میشه. شاید به حق هم باشه این ناراحتی، معمولا هم به حقه. ولی روهن رشد ما کم میشه. پشت معنوی ها جلوش گرفته میشه. اگر بیتونه آدم یه جوری به خودش کنار بیاد روح آزاد میشه از فرمایش دیشب شما برداشت کردن که شما فرمایدید خدا چیزای بد رو برا انسان میاره و با اون آیه قرآن که و ما اصابات رو نسیدیم فرم نفسی تنافی دیدن من عرض نکردم بدی ها رو خدا برای افراد میاره من عرض کردم بدی ها رو هم که بدان انجام میدن قدرتشون رو خدا بهشون داده اون توان و و به و قدرت رو خدا به دوز داده میاد همه رو یه شبه برمی‌داره میده مثلا یا میاد یه شخصی میزنه یکی رو ناکار میکنه یا میکشه یه توانی داره اون توان رو هم خدا داده. لذا همه قدرت، همه توان دست خداست. همون خدایی که از توانش یه دوز میاد اینجور سوء استفاده میکنه، همون خدا میتونه مان رو برگردونه. آیا برای حوزه رفتن استخاره بکنیم؟ حوز علمیه؟, حوز علمیه؟ حوز علمیه استخاره نداره. من استخاره اینو ندارم که تو این لباسم اما امید اینو داریم که ان شاءالله به عنوان سرباز حضرت به فضیلت مون حضرت بسیار بسیار بسیار کار محترمیه. خیلی محترمه. جای پیغمبر خدا مثلا آدم میشینه دیگه در حد خودش امام جماعت شدن نوشتن کتاب سخنرانی کردن تدریس کردن تحصیل کردن اینا همه کارای پیغمبریه بهترین کاره تو کارهایی که معمول هست بین انسان ها کارای یدی معمولا انجام میشه کارای فکری از کارای یدی بهتره تو کارهای فکری، کارهای فرهنگی بهتر از کارهای غیر فرهنگی. تو کارهای فرهنگی بهترین کار کارهای هنری نظیر نداره. من ارزشش ندارم. اونجور که باید شاید از اندام کنم، استفاده کنم از این فرصت. خیلی فرصت مختنمیه. چه کسانی با چه برای این بحث طلبگی مناسب هستن یا افراد متوسط در استعداد و حافظه و روحیه فرار از گناهی دارن کافیه برای رهایی از وابستگی خصوان وابستگی در فاقت به دوستی چکنی کنید؟ باید دوستی هامون برای خدا باشه نه برای حس من. گاهید به خاطر لذت دوسته ها رو دنبال میکنیم ادامه میدیم مثلا بعد بگیم خدایا این شیعه امیر المومنینه باش من رفاقت میکنم بلکه امیر با من رفاقتی برقرار کنه اگر نه به اون من کاری ندارم به محصه این هم که این مثل که از مسیر دوره ازش فرار میکنم امیرال مومنید فرامانش کرده که با بدان نشین صحبت صالح تو را صالح کند صحبت تاله دو را طالح کند هم خیلی مهمه، خیلی اکثر که هایی که خوبن به خاطر هم نشینه. و به عکسی هم هست اکثر بدش هایی که بد میشن هم نشینه بد دارن همیرال از این دوستی های که دوشار افراطی میشه مدام مثلا چیزی از دو طرف که مثلا با همدیگه باشند بعد هم چه طرف مقابل میکنی روابطر رو چم کنه اون طرف دوشار اصابیت و رفتارای اونجونی میشه نید نداره همه امازه مولا صدره خصوصا یک کتاب داره در باب رفاقت با جوان ها تأکید میکنه که افراط نکنیم به مشکلات میفته مشکلات زیاد باید از اینجور افراد خیلی احساسی در را پرار ولی اینجور دوشار عصبیت و اینجور نباید حالا آره من باید خودمون اجازه بودم از یکی دو روزی دیگه سال نو آغاز میشه سال کردن که تو این ماه های مهموارش رمزان و سال نو و دید و بازدید ها چه کار بکنیم که حرمت ماه رمضان این ها رایت میشه و سلیه ارهامم صورت دگیره مقدمه بناه رو ننشینیم، اگر هم دیدیم وضعیت داره ناجرور میشه، با لطافت و آرامش این ها باید مجلس رو یه جوری ترک کرد یا جلسه رو به خودشون باگذار کرد. یه مکافاتیه ما مقااستیم از دستش در بریم جب نشد. دیگه توفیق پیدا کردیم بیایم خدمت شما ها، بلی خوب باید زودتر برگردیم از ما که خیلی خوشحالی می توفید نصیبیم باشده که حتمت شما حسیدیم ما بیشتر در بعضی از تشرفات شده که مثلا حضرت به بعضی از بودورگان توصیه‌هایی هایی داشتن مثلا درات بعضی سورا و اینها آیا اون ها را رو عمل بکنیم یا پس ها سما نه به اون افراد فهمیش کردن ولی خوب شنیدنش خوندنش متناک برای آدم روحیه میاره، باورماندی میاره پرسیدن چه قبلا خیلی دیر عصبانی میشنن، ولی اخیران خیلی زود رنج و زورم عصبانی میشنن، چه کار یه دقتی باید بکنه ببینید چه اتفاق پیش اومده، ولی در کل، وقتی اینسان میبینه بوی عصبانیت داره، زمینه های عصبانیت داره ایجاد میشه باید خلکن کنه باید چه عوض کنه نیشهسه بیسته ای با بیفته بدون اتاق بده یه بزرگی بگیره رپاجتی برده حالتی عوض کنه که عصبانیت پیش نیاد و اللا کارال رو خراب میکنهزون رها میشه زحمت های گذشته رو همه رو به برت میده. دعای سعیبصد سجادیه رو پیشنهاد می هر روز یک دعاش خونده بشه یا به چه صورت خونده بشه خوبه و مفیده. هر کدومش به جا خونده بشه خوبه همین دعای هفتان هم برای کسایی که استرحال پیدا کردن مامونده شدن درمونده شدن مثلا دعای به هست دعای به والدین هست خانوم 18 سالهی هستند که پرمولند که اگر توصییی دارید برای ماها در این بهترین توصیه نماز اول وقته تاکید کردن بزرگترها که جوان که اگر نماز اول وقتشون را عمدن به تأخیر نندازن خیلی کارشون رو میشه زندگیشون آیندهشون درسشون کسایی که مرافقت میکنن میان مثلا میخوان رفاقت داشته باشن از همجنس هاشون آدم های خوب نستشون میشه جواب این سوال کسایی که کارهای اجتماعی مثلا به تحبیری هستن درگیر کارهای متعدلی میشنن ذهنشون خیلی درگیره اینا به رهایی از این افکار چه کار باید بکارن؟ بعد این ساعتی رو برای خودشون بزارن بهترین کار این هستش که یه گروب بیرو ناقل یه گروب بیرو ساعت خالی بذارن. اون موقعی که معمولا مثلا وقتشون بیشتر هست و وقتشون آزاده برای خودشونه اون گروب روز تثبیتش کنن هر روز همون ساعت رو وضو بگیرن پیشینن خودشون رو در حضور حضرت ببینن ساکت اگر ذهنشون پراکنده شد عرض کنن یا صاحب از زمان ادرکنی ولا تحرکنی چند بار تکرار کنن دوباره ذهنشون به حضرت مشغول شد سکوت کنن خودشون رو معدب در خدمت چون حضرت یک قدرت خودش داده در آن واحد هر جا که بخواد میتونه حاضر شه در یه زمان چندین جا چون وجودش وجود مثالیه میتونه. این بسیار موستره. خدا هنشان رو به همه ما توفیق بده سلاباتی